سلام و درود، من فرزان فرامرزی هستم و شما شنونده پادکست خودمونی هستید. سلام و درود و سال نو مبارک امیدوارم سالی سرشار از موفقیت داشته باشید مخصوصا که امسال سال میمون هست امیدوارم سالی میمون و سرشار از شادی و همراه با موفقیت داشته باشید اگر در ایران هستید امیدوارم تعطیلات نوروزی خوبی رو پشت سر گذاشته باشید اگر مسافرت رفتید اگر به دیدار فامیل رفتید امیدوارم تعطیلات نوروزی خوبی رو پشت سر گذاشته باشید سیزده به در هم بهتون خوش گذشته باشه اگر هم در خارج از ایران زندگی می کنید هر جایی که هستید امیدوارم که هوای دلتون بهاری باشه و سالی سرشار از موفقیت رو پیش رو داشته باشید. در خدمتتون هستم با سری دوم از پادکست خودمونی. ادوارم این چند ای که در خدمتتون نودم هفته های خوبی براتون بوده باشه حقیقتش این تاخیر یک مقداری برنامه ریزی شده بود و یک مقدارش هم برنامه ریزی نشده همونطور که میتونید یک هفته بعد از قسمت 26 م ماه روزه یا سیام ماباهایی ها شروع شد و من 19 روز رو روزه بودم اشکالی که ماه روزه داره این هست که خب قبل از افتار که سر کار هستی و خب نمیشه کارهای پادکست رو انجام داد و چیزی ضبط کرد و بعد از افتار هم من خودم شخصا شما رو نمیدونم حالا اگر روزه گرفته باشید اوننه که گرفتن میدونن نمیدونم شما رو نمیدونم ولی خود من بعد از افتار دیگه انقدر حالت خستگی و بیحالی بهم به دست میده که نمیتونم و نمیتونستم واقعا بشیینم و چیزی را ضبط بکنم بعد از اون هم که تعطیلات بودین اینج... عته خب اینجا مثل ایران تعطیلات اید نداریم مدارس تعطیل از ولی برای کسایی که مدرسه نمیرن تعطیلی وجود نداره در واقع. ولی خب چون مدارس تعطیل بود. و برادرم هم از کانادا به دیدار ما اومده بود فرصت خیلی خوبی بود که استفاده کنیم از این موقعیت و ما هم به تعطیلات نوروزی بریم این بود که نخواستم پادکست رو یک هفته به قولن درست بکنم و هفته بعد در مسافرت باشم و نتونم اونو درست کنم و ترجیح دادم که این مدرت رو هم به شما هم به خودم یک استراحتی بدم و با سری دوم با برنامه های جهتر و موضوعات دیگه برگردم حقیقتش این خیلی طبیعیه در هنگام ساخت برنامه مثل یک کتاب کتاب هم فصل های مختلفی داره برنامه های تلویزیونی برنامه های رادیویی و پادککس هایی که حالا از روی آیتون یا از شبکه های رادیویی هم میتونید گوش بکنید در همه جای دنیا به فصل های مختلف تقسیم میشن که البته این هم دلیل داره هم از نظر تکنیکی بالاخر عواملی که دست در کار اون برنامه ها حسن نیاز به استراحت دارم و همین اینکه از اون فرصت استفاده میکنم برای تجدید قواه و برنامه‌ریزی بهتر برای سری جدید من عته دستند در کار ندارم و همه کار رو خودم انجام میدم و لازم بود که یه استراحتی بکنم اما همیشه تو فکر این بودم که چطور میشه پادکست رو بهتر کرد چه موضوعاتی رو انتخاب بکنم که برای شما هم جالب باشه به درد شنونده توی ایران هم بخوره و کسانی هم که توی ایران نیستن ولی ایرانی هستن وقتی این برنامه رو گوش میدن اونها هم بتونن استفاده کنن در واقع فقط مخاطبش داخل ایران نباشه اما مخاطبش ایرانی ها و فارسی زبان ها باشه در این مورد خیلی فکر کردم بارها هم از شما کمک خواستم و گفتم اگر نظری پیشنهادی داری حتما کامنت بذارید اگر مایل هستید که در اجرای برنامه شرکت کنید حتما به من خبر بدید. فکرهایی کردم و احتمالا از هفته آینده یک تغییراتی رو میدم حالا البته در این زمینه خیلی مطمئن نیستم سعی می مهمان بیشتر دعوت بکنم و خیلی دوستم برنامه به صورت دو صدایی باشه و در واقع فقط من نباشم که حرف میزنم حالا یا مهمان باشه یا حتی دو تا مجری باشه که برنامه رو اجرا بکنم. سر کار که بودم دیدم یکی از همکارام صدام زد و گفت که اوضاع ترکیه انگار خیلی خرابه گفتم که چی شده مگه جدیدا چه اتفاقی افتاده گوی انفجار امروز دوباره به وقوع پیوسته و ظاهرا چند نفر مردن من گفتم که من هنوز اخبارو چک نکردم و چون صبح زود زدم از خونه بیرون الانم مشغول کار بودم هنوز چک نکردم که ببینم چه خبرو قضیه از چه قرار و چیزی در این مورد نمیدونم بعد مشغول به صحبت شدیم و چون میدونست که من اونجا در ترکیه به عنوان پناهنده مدتی رو زندگی کردم و براش تعریف کردم که دوست و آشنا هم دارم که در حال حاضر در ترکیه زندگی میکنن میخواست مطمئن بشه که در مثلا از آشناهایی که من در ترکیه دارم یا از دوستان فامیل ما کسی توی اون انفجارها انفجاری که اخیراً صحبتشو می‌کرد و انفجارهای قبلی کسی آسیبی نیده باشه و بعد هم برگشت با گفت که خب خوب است که تو الان تو این وضعیت که این اتفاقات داره میفته حداقل اونجا نیستی و یه جایی هستی که امن‌تر هست ما هم مشکول صحبت شدیم و یک مقدار در مورد شرایط منطقه براش بیشتر توضیح دادم و در مورد شرایط ترکیه شرایط کورت ها. بذاریم من این خبر رو برای شما بخونم تا بعد ادامه صحبتمون رو در این مورد انجام بدیم. خبر آنلاین به نقل از ایرنا نوشته که رسانه های ترکیه با کود فوری از وقوع انفجاری در نزدیکی پایانه شهر کردنشین بکر ترکیه خبر دادن. چندین دستگاه آنبولانس به منطقه اعزام شده است شبکه خبر CNN ترک گزارش داد که گفته می شود این انفجار هنگام عبور یک خودرو نظامی از منطقه در نزدیکی ترمینال اتوبوس رانی این شهر رخ داده است. یه نکته جالبی که من متوجه شدم در هنگام خوندن این خبر این است که در خبر آنلاین به نقل از CNN ترک، نوشته که عوامل PKK مسئول این کار بودن. من در CNN گشتم در CNN بینوملالی نه در CNN ترک. صحبتی نشده بود که عوامل PKK این حمله رو به احده گرفتن یا تایید کردن که کار اونها هست. ولی از این صحبت شده بود که در انفجارهای که قبلا صورت گرفته به اسطلاح کردهایی که با دولت ترکیه می از جمله PKK و دولت اسلامی داعش این بمبگذاری ها رو مسئولیتش رو به احده گرفتن ولی بمبگذاری جدید هنوز من پیدا نکردم که در خبرگزاری سی و همینطور در خبرگزاری الجزیره رسمن نوشته شده باشید که پک اکه مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته فقط حدس و گمان هایی هست که چون نزدیک به مرز هست و اون منطقه منطقه کردنشین هست میتونه و احتمال این رو میدن که این گذاری کار پکیکه بوده اما هنوز چیزی از طرف پکیکه منتشر نشده برای کسانی مثل من که زمانی رو به عنوان پناهنده در ترکیه زندگی کردن و خاطرات خوبی هم از اون زمان دارن ترکیه در واقع مثل کشور دوم میمونه خوندن هر روزه اخبار کشت کشتار و بمگذاری فرقی نمی کنه. در ترکیه باشه، در بلژیک باشه، در فرانسه، ساحل آج، پاکستان، عراق، سوریه اینها اخباری است که واقعا دل آدم رو به درد میاره و جای تاسف داره. من همیشه میگم کشوری امروز اتفاقات داشتم به همکارم میگفتم خیلی جای تاسف داره کشوری به زیبایی ترکیه، دست خوش این اتفاقات بشه. همینطور عراق و سوریه فرقی نمی کنه این بمبگذاری ها کجا انجام میشه مهم این است که در اکثر مواقع و در اکثر موارد این بمبگذاری ها جان انسان های بیگناه رو میگیره. زنان، کودکان، بچه‌ها. اگر بخوام صحبت میراث فرهنگی رو کنیم و آثار باستانی که به دست یک عدد جاهل و متعصب داره تخریب میشه شما بگید تو این هاگیرواگیر و, ها و گرفته شدن هر روزه جون انسان ها در عراق و سوریه و جاهای دیگه دنیا تو به فکر میراث فرهنگی هستی خب البته در مقابل جون انسان ها در مقابل جان انسان هایی که هر روز گرفته میشه شاید اون میراث فرهنگی خیلی جای دفاع نداشته باشه اما چرا جای دفاع نداشته باشه من فکر می کنم اینها میراثی است که از گذشتگان به ما میراث بشریت هست و وظیفه همه بشریت هست که این میراث رو حفظ بکنه. که به های آینده هم برسه اما خب همونطور که گفتم متاسفانه این میراث زیر دست یک عده جاهل و نادونی افتاده که با تعصب خشک و کورکورانه دارن اونها رو هم خراب میکنن و به اون میراث هم ضربه میزنن خب امیدوارم که این بسات چه سریتر برچیده بشه و خواهر میانه هم بتونه رنگ صلح و آرامش رو ببینه فکر کنم برای این هفته به انذ کافی از سیاست صحبت کردم تا یه موقع قلب یک عده‌ای چون می‌دونید یک عده قلبشون حساس نسبت به مسائل سیاسی و اگر اسم مسائل سیاسی رو باد قلب اینها وای میسه خب برای اینکه قلب یک عده از شنیدن این مسائل سیاسی ایست نکنه و ایست قلبی بهشون دست نده یا ایمان یه اده زیاد نشه بهتره که همینجا بحث در مورد مسئول سیاسی و جنگ و خونریزی رو تموم بکنم یه خبر دیگه دارم که اتفاقا سیاسی نیست علمی خیلی هم خبر خوبیه بذارید در مورد اون صحبت بکنم شما چقدر به مسائل علمی مخصم مسائل فضا و جهانهای ناشناخته و اکتشافات فضایی علاقه دارید اگر علاقه مندید و دنبال می کنید که حتما شنیدید اگرم دنبال نمی کنید انان می شنوید که ناسا یک سیارک رو به اسم یک دانشمند ایرانی نامگذاری کرد حالا چرا این خبر خیلی برای من مهمه و چرا من خیلی از این خبر مخصوصا این خبر به خصوص رو انتخاب کردم برای این هفته بذارید من خبر رو براتون بخونم ببینم میتونید حدس بزنید یا نه دکتر فیروز نادری مدیر اکتشافات منظومه شمسی سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا در صفحه فیسبوک خود خبر داد که این سازمان یک سیارک را به نام نادری نامگذاری کرد این دانشمند متولد شیراز که اخیرا اعلام کرده بود بعد از 36 سال فعالیت در ناسا میخواهد بازنشسته شود سشنبه ده فروردین ماه با انتشار پیامی در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد که در میمانی خداحافظی با ناسا خبردار شده که سیارک 5515 با نام el 1989 به اسم نادری نامگذاری شده است. فیروز نادری در این پیام میگوید که پس از من این سیارک تا میلیاردها سال دور خورشید خواهد گشت. خب حتما حد سدید که چرا این خبر برای من مهم بود و این خبر به خصوص رو انتخاب کرده بودم برای شما بخونم اگر اگر فکر می کنید که من از جمله آدم های هستم که خیلی پرگیر مسائل هوا و فضا هستم خب اشتباه می کنید اما اگر فکر می کنید که خبر رو به این دلیل انتخاب کردم که دانشمند العاده آقای نادری شیرازی هستم قطعا درست فکر می کنید خب باعث افتخار تمام ایرانی ها و شیرازی هاست امیدوارم که قسمت اول از سری دوم پادکست خودمونی مورد پسندتون واقع شده باشه با امید اینکه که من بتونم برنامه های بهتری رو تعهیه بکنم و شما هم هفته خوبی رو در پیش داشته باشید تا هفته آینده و یک قسمت دیگه و موضوعاتی دیگر خدا ها رو نگهدارتون